ذهن و عملکردهایش کردهایش ربازاتارس چند دقیقه ای ذهن سخن خواهم گفت قابلیت های ذهن بشر هرگز تا درجات بالایش مورد استفاده قرار نگرفته است. او پهله عظیم قدرت آن را شناسایی نکرده است و بیش از معدودی از مردم قادم نیستند بیش از یک پنجم به قوه های فیزیکی خود را مورد استفاده قرار دهند. مغز قابل تشبیه به یک ضبط صوت است. هر چیزی که بتواند تاثیر روی ذهن بگذارد و علائم دریافتی از اقامل بیشماری که به نظر نمی آید تأثیری بر ما گذاشته باشند به لایه های زیرین آگاهی انتقال و برای استفاده آینده بایگانی می شوند ضبط این تاثیرات، بخشی از تجربیات بشر را می‌سازد. این گونه است که برخورد‌های تو بخشی از تجربیات تو می‌شوند. دیگر اینکه بشر کوشش می‌کند یک زنجیره ارتباطی بین اندیشه ها و خودش در ذهن تو بیافریند که به محض تحریک یادآور الگوی واکنشی مورد نظر باشد. این روندی پیچیده، ادامه دار و متصل به نظام اعصاب حسی توست. منظور از الگوهای واکنشی خلاص کردن ذهن از بار بیخودی است که در طی زندگی روزمره ناآگاهانه از علائم محیطی برمیچیند عموماً این واکنش‌ها خود خودی و عکس‌العملی می‌باشند و می ما باید از بابت آن سپاسگزار باشیم. اگر به خاطر این خاصیت اوتوماتیزم ذهنی نبود، ما هرگز قادر نبودیم چیزی را به خاطر به و مجادی برای اکتشاف اندیشه های تازه نمی اگر بیشتر روند ناخودآگاه بشر خود به خودی نبود اگر اعمال تحت تأثیر عادت قرار نمی گرفتند ساده ترین رفتار ما مانند راه رفتن پیکیده ترین روند محاسباتی به ترین صورت تمرکز پردیابی آگاهانه تمامی جزئیات ظریف محاسباتی مکانیزم‌های های حرکتی را اقتضام کرد یک شخص ناموسعادل معمولا در خیالات تلخمامی قرار می‌شود. می شود و گاهی هم فانتزی‌های خود را به مرحله اجرا می که برخی از آنها ممکن است از طبیعت تمایلات جنسی باشند خاطرات سری و آرزوهای سرکوب شده آشکار می شوند. او ممکن است در طبع مکاشفات درونی خود از احساس گناه و شرم رنج ببرد یا به شدت حالت ختمانه به خود بگیرد این میتواند بر شخصیت او حاکم شده نفس او را تا حدی متزلزل کند که به تدبیه و زبار دهد. قابلیت درک خدا را میتوان با درک اصولی که بر مبتنی است آموخت اصل نخست قانون پیشنهاد است استعداد مردم در پذیرفتن پیشنهاد با هم متفاوت است اما همه به جز منفیترین افراد تحت تأثیر آن قرار میگیرند مبلغان نیرومندی پیشنهاد را درک میکنند و تاثیر پذیری بشر را هم از آن شناسایی کردند به همین دلیل است که رسانه های صوتی، تصویری، تابلوهای اعلانات، روزنامه ها و مجلات انباشته از تبلیغاتی هستند که به حضور مخاطبین پیشنهاد میکنند. روحیه بشر بیشتر زائیده خودپیشنهادی خود پیشنهادی است. مذالک نحوه ی آن است که تاثیراتش را مثبت یا منفی میتازند. به نظر می آید که بیشتر مردم روحیه‌ای منفی دارند که همیشه در حال جاری کردن اندیشه های منفی به خیشه درون می باشند روحیه منفی پسیس آمیز و مخرب است کسانی که درباره‌ی بیماری‌های بیماری حاد دیگران صحبت می کنند معمولا خود را با احساس ناخوشایندی رو به رو خیال نقشی اساسی در تأثیرات روحیه بر آدمی دارد چه خوب و چه بد روحیه منفی، پیشنهادات درونی منفی می‌آفزیند و چرخه‌ی دورنده آغاز می‌شود که در وضعیت هیجان، عوارض نامطلوب می‌سازد و افسایش حوادث متقابلاً به شدت هیجانات می‌اطرایت. به همین ترتیب می‌شود چرخه هایی از امید، شهامت و کیفیت همانند یا متضاد آنان را ایجاد کرد. اغلب اوقات آداخی ما از عواقب شکست می موجبات شکست ما را فراهم میسازند. اگر روحیه منفی گرایانه نبود ما می وظائف خود را به مراتب بهتر از حالا بجا جا آوریم قدرت اراده تأثیر چندانی بر شکست یا پیروزی در تکالیف ما ندارد عواطق مرید عامل تصمیم است پیشنهادات منفی عبارتند از واکنشهای عاطفی نسبت به تنش. مردم از شکست بیشتر می‌ترسند تا موفقیت و به خاطر پیشنهاد منفی هر واسیریزی در امور مینوی ترس از شکست را افزایش میدهد. چون با توفعه‌ای مینوی فرد شکست او سهمناکتر میشود. شود خیال او واقعیت را روشن و واضح به سویش می چرخه درنده همچنان به گردش ادامه می‌دهد و اما روحیه منفی می‌تواند با ایمان به علوم مسیحی، علوم خداوندی علوم ذهنی، شفای مغناطیسی، مザه قدیسین و ایمان درمانی کنترل شود. برای مثال یک شفای قیابی را در نظر بگیر بیمار بعد از مصاحبه با شفاگر به خانه می‌رود. او متقاعد شده است که شفا خواهد یافت. در ساعت تعین شده بین بیمار و شفاگر توی صندلی می در حالی که احتمال دارد شفاگر هزار کیلومتر از او فاصله داشته باشد بیمار از طریق کشش یا تلفاتی ذهنی مراتب درمانی شفاگر را دریافت می کند اما در حقیقت ممکن است در آن لحظه شفاگر به هر کاری اشتغال داشته باشد و بیمار با وفاداری کامل در خانه نشسته و کاملا ناآگاه از وضعیت شفاگر مشغول دریافت تیف وطیعی از است که متقاعد شده است از جانب شفاگر به سویش ساته می شدند. بیشتر مردم ادعا می که قدرت های روانی دارند اما بیشترشان قدرت فرید میدهند. دهند که ادعای تصاحب قدرت های ازشاری می کنند غالبا خودشان توهمات صوتی و تصدیری برای خود می آفرینند. متبهرین اطرالی افرادی در گذشته ها بودند که به استادی در هنر خود پیشنهادی رسیدند بسر به جای تفکر با ارکان هوشیاری اشتباها به سوی اندیشیدن با عواطفش ترخیب شده است روحیه های منطیه نهفته در درون همواره آمادند تا درون آدمی تضاد بیافرینند فرینند ستیزی بر این مبنا که آیا میتوانم یا نمیتوانم به این ترتیب کنترل آگاهی جسمانی و تنفس از استاد عك می شود و ذهن دائما بر او مسلط باقی میماند نوری ساروف باور من نمیتوانم را لغو کند و آن را با ایمان به استاد جایگزین میسازد وقتی روحیه منفی بخشی از تفکر متعارف آدمی شود انهدام آن بدون کمک استاد به دشواری ممکن است روحیه یک فرد فرایند تجربیات اوست. بنابراین در صورتی که رنج بسیار برده باشد نسبت به پیشنهادات منفی پذیرش بهتری دارد نحوه واکنش یک فرد نسبت به نخستین دفعات یک تجربه میل به تبلور در الگوهای رفتاری وی می کند بنابراین چونان که کسی به طور اساسی احساس عدم امنیت و حقارت می کماویش در تمام عمر خود منفی میاد باشد اگر نحوه استفاده از تفکر مثبت به او آموزش داده شود ادیان و فرقه ها آگاهانه از هیپنوتیزم، خود القایی و خود پیشنههادی استفاده می کنند چه بدان معترف باشند و چه نباشند؟ یک واقعیت ثابت شده هم این است که فن پیشنهاد به ذهن در گروه تنفس موزون و حبس طولانی نفس نوعی فیش تخیری ایجاد می کند که در بیشتر مکتبهای ماورا طبیعه آموزش داده می شود. ابتدا به آموزش یک تاپرست و وستگرائی می که بر اساس تمرکز بر یک مسلوب بنا شده است از آنجا به بعد یک قدم تا وضعیت سماری با می وضعیت مدیتیشنی که راهبین بودیست به آن وارد می‌شوند یک وضعیت هیپنوتیستی است که با خم کردن دست ها و تمرکز توجه روی شستها انجام شده شرایطی درونی می آفریند که برای مدتی آنها را از محیط مقاصد و هدف‌هایشان در عالم بیرون جدا می‌سازد در این مزید می توانند تمامی توجه خود را به مشکلاتشان معطوف نگاه دارند تا راه حلی برای آن پدیدار گردند تمدد اصاب کمید برطرف کردن دردهاست هاست تو می توانی یا قربانی پیشنهادات منفی باشی یا ارباب مشی مثبت می توانی از نظر روانی آماده رنج بردن از درد باشی غالبا وقتی کار سختی در پیش داریم نفتمان کوشش می کند ما را به سوی موضوع لذت بخشتری ترقیب کند اگر به آن اجازه بدهی شیوه خود را به کار برد نفت کالبت را تا ابد در اتش و یافتن لذت های بیشتر نگاه میدارد. نفس نفت تحت حاکمیت اصل لذت قرار دارد نفت قادر به ارزیابی منفعت و زیان یک فرد نیست چون قدرت استفادن ندارد. ذهن اوو مسئول کنترل کردن نفس لذت طلب چون چنانچه روحیه مثبتی در رابطه با کارمان بیافرینیم همان کار برای نفس لذت بخش می شود. اینکه از کاری احساس لذت کنی یا نکنی، یا از آن ملول شوی یا نشوی، همگی بستگی به روحیه و الگوی رفتاریت دارد. اگر در ایام کودکی برای انجام کاری تشویق نمیشدی، تن در دادن به هر وزیفه ای برایت کار بس دشواری بود اما الگوهای رفتاری نادرست هم با مهار کردن ذهن قابل اصلاح هستند. یک چتمنداز سالم میتواند در ذهن تو کارش شود تا روزی که به یک واکنش شرطی دائمی تبدیل شود. عوارض صرفاً عبارت هستند از ظهور رسیدن مشکلات مخفی شده عاطفی و مسائل بزرگی که باید حل شوند. استاد معمولاً تو را مکرران در مقابل مشکلات قرار میدهد تا به تدریج حساسیت خود را نسبت به آنها از دست بدهید و هر بار با انرژی کمتری به آن واکنش نشان دهی و معالاً به نقطه اشباء برسید. باید در همه اوقات از خود آگاه باشید باید همواره اعمال و انگیزه های خود را در پرتو آنچه از استادان اک آموخته ای تحلیل کنید این را تا جایی ادامه میدهی که الگوی رفتاری تازه ای و روند است هست انکاس یابد و اعمالت خودکار شوند در وضعیت عمیق سمادی هنگامی که با دست استاد اک در دست, دست در عوالم درون سفر می کنی ها معمولا طوری گزیده می شوند که به اصل لذتی که در ذهن ناخودآگاه مستقر است پاسخ مثبت دهند همه پیشنهادات باید به این اصل لذت پاسخ رو باشند که بیشتر آتفیست تا اقلالی ذهن درونی بیشتر به لذات زندگی اهمیت دهند هنگامی که در طلب همین لذات باشد ما دوچار افسردگی می شمیم درونی همیشه در جستجوی راهی برای اجابت تمایولاتش می نخستین اصل لذتی که بعد از تولد تجربه می شود گرسنگی است بعد از پرشدن مده تفر راضی می شود او تصور می خوردن یکی از وقایع بسیار لذت بخش زندگی است چون یکی از نیازهای اساسی حیات او را که موجب ادامه زندگی کاربدش می شود، برطرف کند وقتی کودک به سن بلوغ میرسد و از دسته ای از لذات می میشود ذهن درونی ممکن است برای جبران کردن آنها باز هم احساس گرسنگی بیافریند ذهن آگاه به این احساس با فکر کردن به غذا پاسخ میدهد و متعاقبا در صدد تأمین آن برمیآید جالب توجه است که غذاهای انتخابی این افراد معمولا شیرین و بسیار مغذی هستند و به این ترتیب با فاسق گویی بیشتر به اصل لذت موجبات چاقی قلبانی را فراهم میآورند، و معمولا هیچ شیوه ای هم برای درمان این نوع چاقی مؤثر نمی تنها هنها چاره این افراد پرهیز از غذاهای حاوی نشاسته و غند نخوردن ما بین بعدها و محدود کردن حجم غذا فقط تا میزان رفت گرستگی است پیشنهاد هنگامی بهترین نتیجه را می که به اصل لذت بیشتر پاسخ باشد. به همین دلیل است که بیشتر معلمین حقیقت به معنای مستلح روی اصولی کار میکنند که عموماً خودخواهی هرت و مانند آن خوانده می شود. این زوایا برای کار روی طبیعت بشر مناسبند پیشنهادات درون خود صاحب نیرو هستند و هنگامی که در خاطر نشستند شکل انرژی به خود میگیرند و این انرژی باید در قالب عمل به ظهور برسد و جز معلمین خود را به خلسه سواکی میبرند تا آسانه ذهنیشان تا پذیرش یک اندیشه یا آرمان منتخب بارید شود روزنه آگاهی آنها تنگ شده و فقط ورود به بخش قیل انتفاعی ذهن ذهن ناخودآگاه را برای پیشنهادات مجاز میدارد وقتی جوینده استاد نداشته باشد به منظور پرورش خود برای دستیابی به سمادی ممکن است با یک مانع روبرو شود. و آن به ظهور رسیدن یک مکانیزم دفاعی است که با وضعیت هیبنوتیک مبارزه می کنند. این مکانیزم دفاعی نوعی مقاومت از جانب ذهن است که برای شکستن وضعیت خلصه ایجاد می شود. موارد گوناگون تسلط این مکانیزم به صورت احساس خارش در نقاطی از بدن بیتابی، خشم ناگهانی و بیدلیل یا به خواب رفتن غیرامدی مشاهده می شود و زیرکویندگان هنگامی که کوشش می کنند بدن خود را به حالت استراحت درآورند، تنش بیشتری بر آنان مسلط می شود و هرچه بیشتر سعی می کنند، فشار تنش هم افزایش می‌یابد. این ترتیب مراقبه برایشان مقدور نمی شود. گاهی در بخشی از بدنشان احساس خارش می کنند و می خواهند آن را بخارانند. هرچه بیشتر مقاومت می کنند، شدت آزار ذهنیشان افزایش می آود. گاهی مراقبه به خوبی ادامه دارد که ناگهان خروشی از خشم یا عصبانیتی که دلیلش روشن نیست به ظهور می رسد. گاهی هم به خواب امیغی فرو می روند. آنان جوینده تحت تعلیم استاد باشد این شرایط متوقف شده و کوشش مینوی آنان به درستی تصحیح می شود طی یک برنامه 20 دقیقه‌ای رادیو معمولا سه بار آگهی بازرگانی به منظور تبلیغ کالاها اجرا می‌شود شاید آگاهانه به این تبلیغات گوش ندهید و شاید هم با بیقراری آن را تحقیر کنید اما ذهن ناخوشاگاه به هر صورت پیشنهاد را دریافت می‌کند و در آینده هنگامی که نیاز به آن کالا برایش پیش میآید به خودی خود در جستجوی مارکی از کالای مورد نیازت آید که در آنجا شنیده و حتی آگاهانه آن را دفع کرده بودی. سمت قدرت پیشنهاد در ارزای طبیعت عاطفی بشر نهفته است، نه طبیعت عقلانیش. چون اگر قرار بود بشر پیشنهادات را ارزیابی کند بیشتر قدرتشان از دست میرفت. به هر حال بشر عاطفی میاندیشد و یک پیشنهاد چنان چه بدون تناقض و صمیمانه ارائه شود هرچند مورد نهی ذهن آگاه قرار گیرد به درون ذهن ناخود آگاه نفوس کرده پریشه میتواند. آنگاه، پطر اینکه اعتراضات و مقاومت‌های علیه آن پیشنهاد شکسته شدند موضوع آن به ذهن آگاه سعود و فرد نسبت به آن عمل می کند در حالی که کاملا فراموش کرده است که یک روز با این عقیده مخالف بوده است و اگر هم بداند با استفاده از یک روند منطقی قابل قبول دلایل موجهی برای عدم پذیرش در آن بره و پذیرش فعلیش می تراشد. توجیه اقلانی روند آتفی مکانیزم تفکر است منظور از آن محافظت از نفس در مقابل احساس گناه یا بهتر بگویم رواندیست که تیه آن نفس با استفاده از توجیه عملی که انجام داده و یا با آن اندیشیده خود در برابر احساس گناه محافظت می کند این این یک شخص می افکار زشت داشته باشد یا حتی عمل زشت یا خوشونتی کرده باشد و عمل خود را با گوشت کردن این نکته به خود که کاری که کرده است در را انجام است در از مدت نتیجه درستی دارد هرچند در ظاهر نادرست می نماید توجید کند به این تحصیب نفس او به او اطمینان می دهد که از همه چیز گذشته حقا اوست اعتبار و حیثیت یکی دیگر از ذراعی است که قدرت پیشنهاد را افزایش میدهد پیشنهادی که از جانب یک شخصیت برجسته ارائه شود، راحت‌تر پذیرفته می‌شود تا از یک شخصی که صاحب هیچ اعتباری نیست. حیثیت و منزلت تنها دارایی بیشتر به اصطلاح مردان مقدس است. اعتبار ارزش به آنان را تعیین می‌کند. قدیس کازر تو را متقاید می کند که او امور تو را در درست دارد و آنچنان تحت تاثیر اطرافش قرار می گیری که در دام قدرت او می رفتید. بیشتر مردم استعداد هیپنوتیزم شدن دارند و یک شبه قدیف هم از این است هست لحظه که قدم به حوزه حاله او می گذاری اراده او آغاز به کار کردن روی ذهن ناخداغا هت می کند در اطارات او معمولا ارجاعات و اشارات نحوشه ای به کار می که وی را بهترین عالمیان معرفی می کنند. در اطراف این افراد معمولا جارچی های بومی و دستاموزی رفت آمد می که به ستایش آنان مشغول و منتظرند به کوچکترین اشاره وی به حرکت آیند شخصیت او در تمام اوقات کاملا حوط می پر حرکاتش و برق و حساب شده او سریع، تیزهوش و همواره سوار بر موقعیت است اعتماد از حرکت او میبارد و مریدانش را در وضعیت نامتعادل و سردرگم حفظ میکند او مثل هیپنوتیزور نمایشی عمل میکند که شگیرت های بسیاری در آستین دارد و به فوریت از آن استفاده میکند اما میخواهم بحث حیثیت و اعتبار را خاتمه دهم ده یکی از آزمون ها برای تعییر عدم صداقت یک معلم غالباً با دو عبارت ساده که معمولاً تحویل موریدانش میدهد انجام هنجام می شود. مخصوصاً کسانی مخاطب قرار می‌گیرند که تعالیم او را به درستی درک نمی کند در دنبال کردن شیوه‌های های مدیتیشن او ریز موفق نمی‌شوند. او به مرید می گوید تو مقاومت به خرد می دهید. همکاری نمی‌کنی. او هرگز اعتراف نمی‌کند که شیوهش نادرست است یا کوتاهی از خودش است. همیشه مرید اشتباه می کند به این ترتیب هنگامی که در متقاید کردن جوینده به اینکه او استاد بی است، شکست خورد، با ملایمت غیرمستقیم به جوینده می‌گوید که کوتاهی از او هم بوده است که باعث شد او نتواند حقیقت را ببیند، و اینکه او به طور ناخداگاه در مقابل حقیقت مقاومت می‌کند. و هم عدم همکاری و احتراز از تمرکز است تفست به جویده افمینان میدهد چنانچه یک بار دیگر در کلاس درس او حضور یابد خواهد دید که این تنها راه رسیدن به خداست یکی از بزرگترین سوء استنبات در خصوص یک معلم این است که او تو را هیبنوتیز می کند و اینکه مریدان او یا ضعیف و ذهن و از گوشی پایین تر از حد متعارف سهم دارند هیچ عبارتی بیش از این دور از حقیقت نیست هرچه یک مرید هوشمندتر تر باشد آسان به راه حقیقت کشیده می شود چون این عمل معمولاً با استفاده از روند استدلال انجام می که بسیار آسان تر است این عقیده هم که معلمین نالایق می توانند قدرت اراده مرید خود را از وی بربایند یک است. در عوض یک معلم بدمرام قدرت اراده جوینده را در جهت کار کردن برای مقاصد ناشایست خودش به خدمت میگیرد آنگاه اینچنین به نظر میرسد که معلم کنترل کامل قدرت اراده جوینده را به دست گرفته است در اینجا جوینده فریب خورده و انرژی نهفته در طبیعت لجوج خود را در اختیار معلم نهاده تا با معکوس کردن آن به مطلوب خود دست یابد. چندین درجه از سامدی وجود دارد. طیفی که از وضعیت سبات استراحت تا وقفه فعالیت‌های حیاتی را شامل می‌شود که هندوها در آن تبحر دارند. در این وضعیت زربان قلب آنچنان تخفیف می‌یابد که تقریبا نامحسوس است. علائم حیاتی به چشم نمیخورند رسیدا به این وضعیت عملاً برای غربیها غیر ممکن است هرچند با تمرین میتوانند به اعماق وضعیت خوابگردی وارد شوند که در آن شعور کیهانی حكم فرماست در این وضعیت ذهن آگاه در حاشیه قرار گرفته و اجازه دسترسی به ذهن ناخودآگاه و ذهن کیهانی بشر را صادر میکنند آنگاه تحت کنترل قدرت استاد قرار گرفته و جریان حکمت خداوندی را به درون ذهن نقدداگاهش دریافت و به منظور رها کردن آن در ذهن آگاه در وقت مناسب ذخیره می نماید گاهی هم در خلسه ای آن را به ذهن آگاه تحویل می دخل تا به فوریت به عالم بیرون راه یابد. خلسه یا سماری؟ برای نویسندگان و هنرمندان شیوه گرانبهایی است. و به آنان اجازه دسترسی آزادانه تری به منابع انبوهی که در ذهن ناخداگاه انبار شده اند میدهد هنرکیشه ها میتوانند به این وسیله از تنشی که پر پر سهنه نامیده میشود احتراز کنند حافظه تقوییست میشود به طوری که بهتر عبارات سناریو را از بر می کنند مثل چوب زیر بغلی عمل می کنند که بیمار بر آن تکه می کنند و کارمای او محسوب می شوند. استاد می داند که چنانچه این تکه گاه برداشته شود مثل موارد حاد شخصیت سر روبه سقوط و زوال میگذارد. دارد. بدون این چوب زیر بغل مرید نخواهد توانست تعادل خود را در جامعه حفظ کند و چنانچه تحت حفاظت استاد نباشد ممکن است دست به انهدام خود یا ارتکاب اعمال ناشایست در حق همدوانش بزند. آرزو برای بیمار قابل تر از مشکلی است که او مخفی می‌کند. احساس گناه یا شرم بزرگترین مشکلی است که استاد با مریدش دارد. آن چرا که به تو گفته شد به خاطر بسپار. تو به عنوان نفر بعدی برای پوشیدن ردای مینوی انتخاب شده ای تا ماهانتا استاد حق در غیر حیات شد دیگر سخنی ندارم